موزه می‌دونه دو تا تو تو گرداد، دو تا مربوطش داره پروگ درا، پروگ درا خودی پیکر. و جب بخدم کاری می‌کارد، وی وی فقط پیوشید و بازه و داد جیگر آش می‌کارد. فقط پیوشید و داد جی اومدی تانی توی کیروگون شوجی روشونو مہتاگون اومدی تانی توی کیروگون شوجی روشونو مہتاگون خدا می یاد کر تو دنبل شوے خدا می یاد کر تو دنبل شوے اون باشوے بختمم شوگو بختم کریمے نکردہ دیو بو ویشتا می سردہ بختم کریمے نکردہ دیو بو ویشتا می سردہ فاگرت بے فقط پیش دو بازه و درد جگر و شمی خرطا فقط پیش دو بازه و درد جگر و شمی خرطا ہمرا شو ہے شو نہ ہے شو نہ ان وہ خوش گلے نرگس نی لو پارو پودونا نرگس نی لو پارو پودونا جلو گم رات بو بو ہدیونا دغما کری منی کرتا بے بو وشتام سرتا دغما کری منی کرتا بے بو وشتام سرتا فقط بے یشدو دو بازو دارد جگر رو شم فقط پیش دو بازو دارد جگر رو شم خردا ام و کرگونه چشود و گشود خشترد و نه فرنو وجود دب بو عاشق ادب زو مے و بے بوسه دب بو عاشق ادب زو و بے بوسه سرید تا تو گویچمو شد دغدغہ کاری منی کرتا و و وستران سرتا دغدغہ کاری منی کرتا ویبو و وستران سرتا